سلا ده رفیق مسئول شده بود که علی با رفیق نقی آمد رفیق قدیکوتاه و سری کم داشت گردن که چرخاند موهای پشت گردنش آنقدر بلند بودند که تا زیر یقه پیراهن میرسیدند. کت شلواری رنگ و رو رفته با پیراهنی سفید به قیافش معمولی بود به راحتی توانست خود را در نقش بقال سر محل جا بزند بعید به نظر میرسید گشت پلیس به او مشکوک شود به قسمت عقبی اتاق کار رفتیم جایی را کنار رختخوابها پیدا کرد پاچه شلوار را کمی بالا کشید زانو را خم کرد روی یک پا نشست و پشت به دیوار داد دورش حلقوار نشستیم نیما و من نزدیکتر علی دورتر سلام و احوال پرسی زیاد طولی نکشید. فکر میکردم که با هم شام خواهیم خوردم اما او گفت که وقت ندارد و باید زودتر برگردد. خیلی جدی نگاهی به اتاق و اطراف آن کرد. خونتون جای خوبیه. چند تا اتاق دارید. میشه اینجا تایپ کرد. صدا بیرون نمیره؟ همسایه ها چطورن؟ مشکلی که ندارید؟ راه فرارتون کدومه؟ توضیحات ما قانع کننده بود چرا که دیگر سوالی نکرد پاکت سیگار را از جیب کتش درآورد و در حال روشن کردن انگار به نکته هاشیهی اشاره میکند گفت شنیدم مطالعات و بحثهای سیاسی خوبی دارید همیشه به سیگاری ها قبطه میخوردم. آنها قادر بودند فاصله میان دو کار یا دو بحث را با روشن کردن سیگاری پر کنند برای غیر سیگاری ها این فضا خالی میماند. علی توضیح داد که چه کتابهایی را خانده ایم چند بار در هفته مطالعه جمعی داریم و چقدر تیم به مطالعه علاقه نشان می‌دهد. میدیدم که حاشیه رفته و می می‌کند، اکراه داشت که به بحث اصلی بپردازد. نمیدانم. شاید کار او درست بود. نیما که وارد بحث شد، توضیحات بیشتری داد. اینکه کتاب چه باید کرد در دستور بحث است. و به خصوص سوالهای من را طرح کرد نقی آرام بود و حرفی نمی زد با گوشه سبیلش بازی می کرد و هر می گفت مم، مم. بعد نظر مرا پرسید. حس کردم سکوتم را به بیتوجهی یا مخالفت با نظر دیگران تعبیر کرده است رفیق تیم خیلی خوبی داریم. جمعی کتاب لنین رو میخونیم کتاب محسودم کنارش. برای منم سوالاتی مطرحه. مثلا چرا لنین در روسیه مبارزه مسلحانه رو رد میکنه؟ چرا تا این حد کار سیاسی رو عمده میکنه؟ در حالی که رفیق محسود انقدر بر عمل مسلحانه تاکید داره. مثلا آیا در کشورهای دیگه این شیوه مبارزه موفق بوده؟ بعد پنج سال آیا سازمان از تاثیر مبارزه مسلحانه جنببندی داره؟ شاید نمیتوانستم مانند علی و نیما حرفهایم را در لفافه های ظریف به پیچم و شکل مناسبتری به آن بدهم خیلی سریحتر از بقیه هسته اصلی فکرم را تهر کردم از نگاهی که علی به من انداخت فهمیدم که زیادی حرف زدم اما چه چیز را زیادی گفته بودم نیما دنبال حرفم را گرفت لنین در بحث با نارودنیکا اشتباه بودن شیوه مسلحانه در مبارزه اونها رو نشون داده و میگه نقی آرام وارد بحث شد و گفت اینا دو شرایط متفاوته اونجا روسیه بود اینجا ایران اونجا حکومت تزاری و سیستم فودالی حاکم بود اینجا پادشاهی با حمایت سرمایداری کمپرادور بحث بالا گرفت علی هم به اجبار وارد شد با استدلال های بهتر و فاکت های بیشتر بحث را به مسائل تئوریک و به خصوص نظرات لنین و انتباغ آن با شرایط ایران برد. علی کتاب لنین را خوب خوانده بود و بسیاری از جملات را از حفظ می دانست. انگار خود را برای این بحث آماده کرده بود. از این همه تسلط علی لذت می بردم. دلم می خواست می توانستم مانند او بحث و استدلال کنم. نیما گاهی سار نظر می اما بحث را علی پیش می برد. ساکت بودم و گوش می دادم. در انتظاران بودم که ببینم آیا در تیمهای دیگر هم های مشابه خوانده می شود؟ شاید رفیق می توانست چند تا از آنها را به ما معرفی کند. حس خوبی داشتم. در این مدت کوتاه خوب کار کرده و مطالعاتمان موفق بود. یاد تیم‌های قبلی افتادم که اهمیتی به مطالعه نمیدادم یا حداقل وقت مطالعه نمیدانستم چه باید خواند و چرا؟ از این بابت از علی سپاسگزار بودم. بحث میان نقی و علی داغ شد نقی چند بار گفت که لنین چنین و چنان گفته است علی که در این زمین از او پیش بود مچش را گرفت که نه این نقل قول درست نیست و درسته آن چونین است علی در بحث دست بالا را داشت. نقی کم کم ساکت شد و دیگر مخالفتی نکرد. گاهی سوال هایی میکرد مثل اینکه آیا در ایران هم میتوان ایده های لنین را پیاده کرد یا پس چون آنها مبارزه مسلحانه نکردند ما هم نباید بکنیم؟ رس کردم نقی عصبانی است. نمیدانم از اینکه حریف علی نمیشد یا از ایده هایی که مطرح مطرح میکرد. نقی با سوالاتش علی را تا بانجا با برد که او یک گفت. به نظرم حرفای مسود احمدزاده با نوشته های لنین نمیخونه و این ربطی به شرایط ایران نداره. دهانم از شنیدن این گفته باز ماند. آیا بحث ما به این نتایج میرسید یا علی از سر لجبازی با نقین را گفته بود؟ علی تا کنون با این سراحت حرف نزده بود. به نیما نگاه کردم تا ببینم واکنش او چیست؟ نیمام به چهره علی خیره مانده بود و تمام وجودش شده بود گوش نقی که تا این لحظه آرام بود جابجا جا شد و روی پای دیگر نشست با صدایی کمی گرفته گفت این نظراتو تو همین مدت کوتاه و با خوندن همین یک کتاب پیدا کردی رفیق یک بار همه ساکت شدیم. در لحنش تمسخور دیده میشد. سوالش چه معنایی داشت؟ اصلا خوشم نیامد رفیق این صحبت ها برای باز شدن بهتر بحثه نه چیز دیگه ای؟ خب معلومه که کتاب بیشتری باید خوند علی سعی کرد تندروی خود را رف و رجوع کند اما نیما وسط صحبت پریز و گفت رفیق مسئله یک کتاب نیست لنین به طور واضح راه آگاه شدن کارگرا رو تنها در کار سیاسی میبینه رفیق نقی یک بار از کوره در رفت و با صدایی نسبتاً بلند گفت رفیق، فکر کردی معصود احمدزاده لنین رو نخونده بود؟ فکر کردی معصود یه شبه به این نظرات رسیده؟ فکر کردی فقط شماها لنین خوندید؟ نقی عصبانی بود، انگار دهانش کف کرده بود از شهره برف ترسیدم حس کردم دایرهی که دوران نشسته این بزرگتر شده است بود زده به او چشم دوختم نمی توانستم فکرم را بر آنچه میگفت متمرکز کنم نحوه گفتار و شدت عصبانیت و های دستش مرا به گوشه رینگ ترس کشانده بود چرا اینقدر عصبانی رفتارش با ما مانند برخورد با بچه ها بود سن و سالش خیلی بیشتر از ما نبود کل حرفش این بود که ما بچه ها با خواندن یک کتاب میخواستیم همه کارها و نظرات رفقای قبلی را رد کنیم حرفهایش را این طور به پایان رساند رفقا اینجا یه سازمان مسلحان است اگر میخواستید کار سیاسی کنید چرا اینجا اومدید؟ ست تا سازمان هست که اون خوندن لنین و مارکسه چرا با اونا نرفتید؟ مکسی کرد آب دهانش را قوت داد دستی روی سبیلش کشید و آرام اما محکم گفت اینجا جای این بحثا نیست دشمن دست دست رفقای ما رو میکشه اون وقت شما از امکانات سازمان استفاده کرده بدون اینکه هیچ کاری انجام بدید نشستین و از این بحثا می کنید. همه این فکرها از بیکاری و بی‌حرکتیه وقتی رفیق نقی برای دیدن رفیق چشم بسته به آن طرف حیات رفت هر کدام از ما به گوشه‌ای خزیده و در هایمان فرو رفتیم احساس می کردم گناه بزرگی مرتکب شدم از امکانات سازمان استفاده کرده و در مش آن تردید کرده نمیدانستم چه بگویم رفیقی که اینقدر مشتاق دیدارش بودم رفیقی که فکر می‌کردم مطالعات خوب ما را تشویق خواهد کرد با دعوا و انتقاد از ما جدا شده بود مگر ما چه گفته بودیم؟ نقی نیم ساعتی هم پیش رفیق چشم بسته ماند و بعد با علی رفت. از نیما پرسیدم خب حالا چی میشه؟ جوابی نداد. ساکت بود و در فکر. سکوت تیم و در خود فرو رفتن ما روز بعد و روزهای بعد هم ادامه یافت. هر سه نیاز داشتیم تا حرف رفیق نقی را هضم کنیم ارتباط بحث خودمان را با استدلال او نمیفهمیدم. انتظار داشتم که رفیق نقی درباره مضمون بحث با ما صحبت کند نه درباره شیوه کار ما کاش می می‌گفت کتاب هایی که خوانده اید کم است برایتان کتاب بیشتری می آورم. یا می رفقایی را میآورم تا بحث بیشتری با هم داشته باشید یا؟ نیما از همه بیشتر جا خورده بود. حتی حوصله حرف زدن با مرا هم نداشت. بیرون نمی رفت و در گوشه کتابی به دست می گرفت و خود را مشغول می کرد. گاهی می دیدم که کتاب را بسته و به جایی خیره مانده است. خیلی دلم میخواست تا فکرهای من را با صدای بلند و در جمع مطرح کنیم. به علی حق میدادم دادم که گرفته باشد. او انتظار داشت مباحثی که مطرح می کند مورد توجه قرار گیرد اما برعکس با انتقاد روبرو شده بود. مهمتران که رفقای بالاتر به توانایی او در مسئولیت تیم شک کرده بودند. اما نیما چرا اینقدر در فکر بود؟ به نظرم می رسید که مشکل او فقط بحث و برخورد تند رفیق نقی نیست. حس می کردم چیزهایی میداند که از آنها بیخبرم. شبیه موقع برنامه نویسی موضوع را طرح کردم. چرا ما دیگه برنامه جمعی نمیذاریم؟ باید درباره حرفهای رفیق نقیص صحبت کنیم چرا هیچ حرفی نمیزنه؟ من سر در نمیارم. علی شانه ها را بالا انداخت. فکر کردم تمایلی به ادامه مطالعه و بحث نیست. نیما با عصبانیتی که به او نمیآمد گفت چطور نمیفهمید؟ مطالعه جمعی بذاریم که چی؟ میخوایم به کدوم سوال جواب بدیم مگه ندیدید رفیق چی گفت؟ گفت اگه این حرفها رو بزنید جاتون اینجا نیست. میفهمیدین یعنی چی؟ یک بار انگار چراغی در ذهنم روشن شده باشد. فکرم را با صدای بلند بر زبان آوردم یعنی ما باید با انشابیون میرفتیم؟ مدت مدتها بود که انشابیون را فراموش کرده بودم. و وکنون ذهنم مرا به آبان سال 5 و پنج باز می گردند. آبان سال پنجاه و پنج بود روزی رفیق سیمین به همراه رفیقی به نام حسین به تیم ما آمدند آن روز به خوبی در خاطرم مانده است چرا که روز تولدم بود اولین تولدم دور از خانواده از صبح به مادرم فکر کرده بودم و اینکه چه می کند؟ این روز بدون من برو چه می آیا خواهر و برادرم یادی از من خواهند کرد رفیق سیمین گفت که عده‌ای از رفقا بحثهایی درباره مش مسلحانه دارند و خواستند تا نظراتشان در تیم‌های دیگر هم طرح شود گفت برای اینکه نظراتشان صحیح و دقیق منتقل شود همه را بر نواری ضبط کردند و قرار است که این نوار در اختیار همه تیم ها قرار گیرد. بعد هم نوار را گذاشت و ما گوش دادیم. رفیق حسین قرار بود به سوالات ما جواب دهد. بیاد نمی آورم کسی سوالی تهر کرده یا اساسا بحثی در گرفته باشد. در نوار از روابط غلط در اون سازمانی انتقاد شده بود. ای که خیلی مرا ناراحت کرد و حتی مانع شد تا بقیه نوار را با دقت گوش هم حملات تند معترزین علیه شخصیت رهبران کشته شده سازمان به ویژه حمید اشرف بود رفیق سیمین چندی بعد به ما خبر داد که آن رفقا از سازمان جدا شدهاند. از آن پس از آنها با نام انشائی یاد میشد نمیدانستم که سازمان آنها را اخراج کرد یا خودشان رفتند و حالا شش هفت ماه بعد از انشاب آن جدایی در ذهنم به طور جدی تری زنده میشد آنها چه میگفتند و چرا از سازمان جدا شدند بدتر از همه آنکه آنها بعد از جدایی به حزب توده نزدیک شده بودند اما چرا به حزب توده نقل داستان برای علی و نیما چنان آشفتم کرد کنگار انگار به همان دوران بازگشتم خود را سرزنش می کردم. چرا اون وقت به نوارای صحبت انشابیون خوب گوش ندادم؟ به جز انتقادای تشکیلاتی چه بحثای نظری طرح کرده بودند؟ کاش اون نوارا بودن و دوباره گوش می دادیم؟ علی و نیما با اشتیاق حرفایم را شنیدند. انگار چیزی از منشعبی نشنیده بودند. یک بار علی گفت نه رفیق وضع ما با اونا فرق داره. اونا با سازمان مشکل داشتند. ما میخواییم بحثامون رو درون سازمان تahr کنیم. باید اون رو ادامه بدیم اما باید در فرم بیان بیشتر دقت کنیم. سپس رو به من کرد و گفت: دلیلی نداره که تو تمام فکری رو که هنوز جمع و جور نکردی و خودت هم به درستی یا نادرستیشون مطمئن نیستی به زبون بیاری. اگر این بحث رو اینطوری باز نکرده بودی کار به اینجا نمیکشید. از علی سبانی شدم که چرا این تذکر را به من میداد. که نیما جواب داد منظورت اینه که ما فکرامون رو واسه خودمون نگه داریم و به کسی نگیم تا به نتیجه کامل برسیم؟ و این که نمیشه طرح بحث، این که بیشتر آدم‌ها از دیگران دور میکنه علی جوابی نداد و سر را پایین انداخت. بعد از مکسی سر بلند کرده و مصمم گفت مهم نیست که رفقا خوششون نیاد. از فردا مطالعه رو ادامه میدیم. خوشحال شدم. باز حرکتی را در تیم میدیدم. اگر برای علی از قبل اهمیت این بحث ها روشن بود، برای من حالا به تدریج روشن می شد که این سوالات چه اهمیتی می توانست داشته باشد. اما برخورد رفیق نقی مرا شکه کرده بود. با تصوری که از یک مسئول داشتم کاملا متفاوت بود. در این حال در دل کمی هم به او حق میدادم دادم. نظرات ما می توانست به نفی مبارزهی که می کردیم منجر شود. او ته خط را به ما نشان داده بود. از ذهنم گذشت اگر ته این بحث تردید در مبارزهی که می کنیم باشد آن وقت از سازمان چه می ماند؟ اگر ما به این نتیجه برسیم که مش سازمان نادرسته است باید سازمان را ترک کنیم. ترک سازمان برایم تصور ناپذیر بود. هیچ وقت نمیتوانستم به پذیرم مانند منشعبین با تودهی ها کار کنم یا به ماعیست که در خارج از کشور در کنفدراسیون جمع بودند بپیوندم برایم تودهی ها مظهر سازشکاری و محافظ بودند. کنفدراسیونی‌ها ها روشن بودند که در اروپا دور از خطر نشسته و تئوری بافی می کردند. قدم را با این فکر آرام کردم که حرفهای ما برای درون سازمان است. برای رشد سازمان اگر هم قرار است چیزی تغییر کند این خود سازمان است. کلافه شده بودم و سرم از این فکرها به درد می آمد. دلم میخواست بیخیال باشم. باور کنم که همه چیز درست است و نتیجه این بحث ها مرا به هیچ تصمیمی نمی رسانم.